بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمدلله كما هو به و کما یم بغید و جلاله الحمد فی الاخره و الولا و هو بالعزیز و والسلام سمه رسولنا محمد خاتم و و ما امروز راجع به سیر من الله الی الله بود گفتیم که ما سه تا سیر داریم یکی از خلق به حق یعنی اثبات وجود خدا که از آیات این به خدا رسیدیم فهمیم خدای است سیر من الخلق الی الحق دومی که پس از به اثبات خدا رسیدیم درباره خدا بحث کنیم که آیا چه صفاتی او داره و عادل عادل نیست نعوذ بالله سفاتش این ذاته، ظاهر بر ذاته سفات فعلش کلومه، سفات ذاتش کلومه این به من الحق الى الحقه از خدا به خدا سیل سوم من الحق الى از خدا به سوی خلق رفتارش با ما چگونه از پیانبران چطور میپرسه؟ از کم علم علمه به جزئیات داره نت برای ما معادی قرار داده یا نداده خلقت چجوری از ناهی او تشکیل شده حالا در حد اجمال نانده که کتاب های آسمانی خبر دادن من اولین این سه سیر سیرهای اصلیست که ما ازنان تو سیر دومش هستیم از خدا به خدا اینجا ممکنه یک کسی به ما اعتراض کنه بگه آقا ذات خدا بیرون از وصفه بیرون از شناخته شما چه حق دارید که درباره خدا از خدا به خدا بحث میکنید زوج به ذات خدا خداون پرمده لا به بهی علما در سور ها هیچ علمی احاته به خدا نداره چگونه شما به خودتون اجازه میدین در ذات خدا صحبت کنید جوابش این است که ما صحبتمون درباره خدا در این سیر همش سلبیه نه ایجابی مثل قران یا لم یلد و یولد و لم کل له شریک احد شریک نداره زاذه نشده چیزی از او ظاهرش نمیکنه اینا همه سلبیه نمیگه او چیه میگه اینو نداره اینا نداره ما چون از عالم خلق به آلم حق راه یافتیم صفات خلقیتو در اون نباید قائل بشیم چون اون صفاتی رو که در خلق سراغ داریم در حق بخوایم این صفاتو بگیم حق میشه مخلوق بنابراین ما از این حیث بحث میکنیم که اگه ما در کس او در وحد اگه ما محدود هستیم او نامحدوده حد نداره اگه ما مرکب هستیم او بسیط الحقیقه هیه ولی زن نمیگیم اون چیه که به ما اعتراض بکنین شما چگونه میتونین راجع به ذات نام و خدا صحبت کنیم بله نمیشه اونجا صحبت کرد ولی به طور سلبی اگه نتوانیم صحبت بکنیم اشکال بزرگ پیدا میشه اشکال اینه که ما با همین سپاس یعنی تغییر اجسام حدوث اجسام به خدا پی بردیم حالا اگه بیم اونم تغییر میکنه اونم حادثه اونم میشه مخلوق پس ما میتونیم بگیم اون لایه تغییره اون حادث نیست اون زمانی نیست بنابراین ما بحث های سلبی راجعه اون میکنیم وقتی درباره خدا بحث میکنیم نه بحث های ایجابی اگه میگفتیم که فرمول ذات خدا اینه خدا از این تشکیل شده ما ازلدا این غلط بود صد در صد هیچ کسی به این مقام راه نداره نزا رسول خدا فرموده تفک کرو فی خلق الله و لا تفکرو فی ذات الله در آفلینش خدا فکر بکنین در ذات خدا فکر نکنیم. اما نسبت سلبی رو خودشان به خودش داده لم و ولم در این سکم مثل این هیچ چیزی مانم اون مثل هیچ, هیچ موجودی از موجودات عالم که مخلوقا نیست این سپاس سلبی رو خود قرآنم به ما یاد داده حالا در این سیر مسلمون ها سه دسته شدن در برابر چی در برابر سپاتی که قرآن به خدا نسبت داده، مثلا گفته که دست او بالاتر از همه دستها از ج الله باوقی هم گفته تو زیر نظر ما هستی زیر چشمان ما هست نکبه اعیوننا اییون جمع عین دیگه و ارز کنم که از این قبیل سپاه گفته خدا وجه داره کل شیعه حال کن الا وجه همه این موجودات حال کن مگر وجه خداون مسلمان ها با برخورد با این آیات که دیگه بحث از مخلوقات نیست بحث از داد خداست سیر من الحق الى الحق اونجا سلسته شدم ها میگویند که قبل از ها مدسمه کسانی که به تجسم خدا به جسمانیت خدا قایلن میگن که این اسما همونطور که بشر ازش میفهمه، مصداقش هم همونه دست یعنی خدا دست داره اعیان یعنی چشمه ها داره خداوند وط یعنی وش داره هیچ تغییرش ندیم همین که هست این یه دسته مبینیم اینا مشکلشون چیه مشکلشون این است که خداوند رو یه شیئی میدونند مرکب از صورت از دست از پا از کنم که از پهلو چون جنب الله هم تو قرآن کریم آمده پی جنب الله فرد تو پی جنب الله از پهلو بعد حدیث هم میارن میگه قلب هر مؤمنی بین انگشتان خداست هر قلی بره به خود میچرخونه از ایمان به کفر از کفر به ایمان بگن انگوش داره چشم داره سر داره صورت داره خب یه همچین موجودی ما اگه بخوایم با معانی سلبی بریم طرفش از کنم که میبینیم اونم مثل ماست نمیتونیم با معانی سلبی اگه بریم باید بگیم که اون مثل انسان مرکب نیست متغیر نیست پایین نمیاد بالا نمیره تو فضا محیط نیست فضا بر او او محات قرار نمیگیر مثل انسان که محیط در فضا محدوده اونایی یه همچه خدایی تصور کردن که خدا حتی از پیامبر نقل کردن که خلق الله آدمه علا صورته آدمو خدا به شکل خودش آفرین اینو اینطوری تفسیر میکنه پس یه آدمکی درست کردن روی عرشه عرش در های عربه پایین میاد میگه کیست که من رو بخواند که اول رو اجابت بکنم خب مشکل کار اینه ما یه همچین سفاتی که در خلق دیدیم گفتیم به این دلیل اینا مخلوقن حالا اگه خالقشون هم همین طور باشه حالا یه خود بزرگتر اونم مخلوق میشه پس اون مبدع آلم نیست خالق او که بعد خالق طوری وصف بشه که از صفت خلقیت بیرون بره قابل آفرینش نباشه نامحدود باشه مرکب نباشه مشکل اونا اینه و اینا ارز کنم که چند فرقه از اهل سنت هستن که مخصوصا معتقده به این هستند و اینا رو ظاهریه میگن در فقه هم خیلی دی ظاهری هم که خدا گفته پدر مادر اف نگو از این در نمیاد که فوش بشون نده کتکشون نزن فقط اف نباید بشون گو فقه های دیگه میگن بابا این قیاس اولویته وقتی میگه یه اف نگو دیگه به مراتب اولا باید کتکش نزد فوش بشون ند میگن نه نه نه فقط اف نگو اینطور چسبیدن به ظاهر قضیه اینا یه دست دستند دسته این دوم صدفی های زمان ما هستند میگن تمام این الفاظ رو باید قبول بکنیم ولی هیچ معنای تصور برای اونها نباید بکنیم اگه میگه دست یه تصور یه دست که دارای انگشتانه، به قول خودتون انگشتام میگین در حدیث آمده نباید بکنیم چون این مثل انسان میشه آیه میگه لی سکه مثل ای شهر خدا مان... هیچ چیزی مانند خدا نیست خدا هم مانند هیچ چیزی نیست اون آیه رو گرفتن میگه بنابر این باید نسبت به این کلمات که وجه الله جنب الله يد الله عین الله و از این قبیل پلان اینا هیچ تصور معنایی نباید بکنیم ما به اینا میگیم پس شما میگین یه مقدار زیادی از آیات قرآن بی‌معنی است است که حامل معانی نیست بالاخره تو وقتی که معنی دست رو میخوایی تصور بکنی وقتی یاد الله رو میشتویی دست رو دیدی در انسان، حیوان، پرنده، چرنده یه جهت مشترکی از چیزایی که دیدی تو عالم خلق در نظر میگیری میگی, میگی خدام دارای دسته بالاخره یه معنای تصور میکنی ولی اینکه بخوای هیچ معنایی تصور نکنی یه مقدار قرآن معاذ الله الفاظ بی معنی به کار برده و این صحیح نیست کتاب خدا همش دارای معنی است هدایت آمده بشر رو بکنیم بنابراین این دو دسته راه خطا رفتن دسته ثوم که از اهل سنت معتذلی هاشون هستن و از شیعه از کنم مخصوصا شیعیان زیدی و اینها ها هستن شیعه امامی هم هست اینا میگویند که تمام این الفاظ حمله بر مجاز میشه نه حمله بر حقیقت ببینید خدا می به ندزی او نکرد الله یا الله فوق ده مردم فکر میکنن حتی اونایی که معتقدن که این آیات مجازه میگن یا الله فوق ده هم یعنی قدرت خدا بالاتر از هم است نه معنی آیا این نیست معنی آیه این است که اون کسان که پیغمبر در حلیبیه با تو بی کردن دست دادن با خدا دست دادن و من یوت رسول فقط اتا الله هر کسی اطاعت از رسول کند یاد الله فوق ایده هم اینا همه با پیغمبر دست دادن که چند لفظ دست و دست من شما هم دست بده نه ما الله دست خدا رو روی هم است یعنی خدا موافقت داره با این بیعت مقصود اینه اینا همه با پیغمت دست دادن دست خدا روی همه یعنی موافقت داره خداوند با این این است، این مادی نیست که برای خدا اصلا دست تصور بکنی یا فقطی که مثلا قرآن پرموده که دستتو نبند به گردنت نداز اینقدر نگوشه که خودت فقیر بشی دیگه هر کسی میفهمه اینجا منظوری نیست که وسط خیامون اینطوری را نرو اینطوری هم را نرو مقصود این نیست یعنی زیاد بعض بخشش نکن که خودت فاییر بشی و زیاد ممسک هم نباش که به دیگرانم ندی از کنم که بعده وَلَّذِينَ ازاَنْ و لَمْ يُسْرِفُ وَنَمْ يَقْتُرُوْ وَكَانَ بَيْنَ ظَالِكَ قَبَامًا کسانی که پاق میکنن نه اصراف میکنن نه بخل میورزن بین این دوتا بین اصراف و بخل قوام کارشون هست مقصود قرآن اینه خب جور معانی رو آقایون یعنی سلفی ها قبول ندارن میگن نه باید درست کنم که دست خدا رو همون دست تصابر کرد ولی فقط لفظشو قبول کرد هیچ معنایی برای او در نظر نگرفت. از ترس اینکه که جایی دیگه فرموده لیسک هم مثل ای شای. ما برای اینکه که به اصطلاح اختلافمون با به اونا حل بشه به خود قرآن باید مراجعه کنیم که آیا قرآن کریم دست رو در معانی مجازیم به کار برده یا هر جا که میگه دست میگوید که الازی به یدهی اقدت و نکاح کسی که گره ازدباج به دست اوست آقا ازدواج گرهش تو دست کیه؟ تو دست زنه؟ گره؟ نه تو دست مرد نه تو دست ولی زنه که اجازه داده؟ نه یعنی <صفح> <صفح> در اختیار اوست میتونین گره رو باز بکنه حالا بین مفصلیم گفته گست یه دسته گفتن این ولیه خانومه که اجازه داده یه دستهی میگن نه این خود شوهره عقد نکاح در اختیار هم دختر بوده هم ولیش عقد نکاح نه عقده نکاح عقد یعنی گره بستن مستره یعنی وقتی که میخواستن زن و شوهر با هم اون اجازه بده درسته؟ ولی عقده یعنی خود گره خود گره بعد دسته کیه دست شوهر اگه بخواد میتونه طلاق بده خواهر زن اگه بخواد چی اونم میتونه به دلیل اینکه در طلاق خلع زن نمیخواهد و مهرش رو از کم حلال میکنه و مرد مجبور میشه اون رو طلاق بده در نکاه رضعی مرد نمیخواهد در نکاه خلع زن نمیخواهد که قرآن گفته فلا جناه علیه ما فی به گناهی بر اون دو نیست از هم جدای بشن به خاطر اون عوضی که زنداده یعنی مهرشو را حلال کردیم و هر حال مفصول این است که به یدهی اقدر تا نکاح این معنی مجازیه تو دست ظاهری کسیش گریه نیست که یا مثلا میگه وذکر عبدنا داوود زل عید. والابصار و ما داوود رو به یاد آور که دارای دستان بود خب اینکه فضیلتی نیست کفار و دشمنان داوود هم همه دست داشتن یعنی قدرتمند بود همه مفسرین قبول دارند که اینجا والابصار دارای ها بود و دشمنانش هم چشم داشتن یعنی بصیرت ها داشت داوود قدرتمند بود صاحب بصیرت بود خب وقتی که درباره افراد بشر ما توانیم کلمه ید یا بصر و اینها رو حمله به ظاهر بکنیم در خیلی از مواقع در برابر خدایی که لیسک مثلی شی چطور به خودمون حق میدیم اینا رو حمله به ظاهر بکنیم اگه حمله به ظاهر بکنیم میشیم مجسمه اگه حمل بکنیم به لا مفهوم له یه معنایی که اصلا هیچ بی مفومه این میشه معطله اینجور میشیم مجسمه اینجور میشیم معتله به تعتیل قائل شدیم به تعتیل کلمات الهی قائل شدیم یعنی کاربرد نداره معنی نداره از اینا که قرآن گفته. هیچ تصوری نبرد کرد و تصدیق محکوله به تصوره اول باید یه تصور سعی بکنیم تا تصدیق کنیم وقتی نمیتونی تصور بکنیم چجوری تصدیقش بکنیم بس اینا رو بعد تکثیب میشه در واقع یعنی قرآن مقداریش هیچ تصدیق نمیشه تصورش نداریم که تصدیق بکنیم الفاظ وقتی اهمیت دارن که مفید معنا باشد ولی لفظی باشه که هیچ معنا ازش در رهی ریم لفظ, لفظ محمد باطل بیهوده است در کتاب خدا راه نداره حالا تمام عربستان سعودی هم برن رو همون فکر که این الفاظ است بڑا ما مسلمان آزاداندیش هستیم مسلمانی که فبعد شرع عباد اللذین یسمون القول فیرجون احسنا و بعد اونا میگن که معتزلی ها اهل سنت نیستن ما میگیم این عقاید اهل سنت زمخشری ها اینو گفتن سکاکی ها اینو گفتن علمای بزرگ اهل سنت همه گفتن که اینا معانی مجازی داره دست خداوند چشم خداوند این نکبه ایاننا عرب به طرف میگه ازحب اینالله علک برو چشم خدا بر تو یعنی خدا هم زیر نظر خدا باشی تحت حفاظ خدا باشی اینا است که به کار میره چطور تو کتاب خداوند انسان باید متوقف بشی هر حال متأسفانه دسته ای, ای, ای اینطوره وقتی که میگه که خداوند ابن تیمیه مرد بزرگیست چیخور اسلام اطلاعات داره در هر قسمت ولی یک کتاب نوشته مفستل در اینجا که وحل خدا پایین میاد شبای جمعه بالا میره حتی ابن وطوته نقل کرده که من در دمشق بودم ابن تیمیه بالای منبر بود و گفت که خداوند از آسمان هفتم از عرش میاد به آسمان اول همینطور که من پایین میام از منبر آمد از منبر پایین یک فقیه مالکی اونجا بود باش سخت مخالفت کرد ولی از بس پیروان متعصب داشت ریختن اون فقیر مالکی رو کتک زدن و از کنم که لباس شد از تنش کندن و زیر اون امامش یه چپکلای عبری شمی پیدا کردند. وای لباس ابریشمی بر مرد حرامه کشیردن این بدبخت بیچاره رو کشیردن بردن دادگاه فتوا داد اون رئیس دادگاه که این باید زندانی بشه تیره زیر امامش شما به زیر امامه مردم چیکار دارین؟ شما حق نداری لا تدرسته تو بندن روخ کنیم و منزیری فیرهن چی دارم؟ کیه به شما این حق داده؟ این همه خلاف همه به این ضد اسلامه فقیه مالکی بیچاره اعتراض کرده بود به شیخ الاسلام حالا مرحوم آقای بیتار اون گفته که این اشتباه کرده یک کسی دیگه بالای منبر بوده اون وقت شیخ الاسلام ابن شیمیه در زندان بوده این کسی دیگه بود حالا هر کی بوده به هر حال هر کسی بوده از علمای اهل سنت بوده منبر مریدای زیادی هم داشته گفته خدا پایین میاد همچنان که من میام پایین <تصفح> از منبر آمده پایین این بیچار فقیه مالکی که این هم سننی بوده اعتراض کرده کتکست زدن بعد هم به دادگاه چشتر شبکلای ابریشمی به سرته به هر حال سخن اینجاست که این عقایت وقتی که میگوید که او نزول میکنه بعضی استلال کردن از قرآن کریم که حضرت ابراهیم از نزول و غروب کردن ستارگان پی به خدا برد ما افده قال اینی لاه بل آفلین اینی وجهت و وجهیت لذیفتر از سماوات بل عرض چطور خدا خودشم افول کنه میاد پایین بره بالا پس اونم میشه مخلوق به جز آفلین میشه غروب کنندگان پایین آمده و این ابراهیم گرده اینی لاه بل آفلین من دوست را آفلین نیستم بنابراین این خلاون احاطه کلیه به همه اشیاء داره از کنم که قبل از این که مکان و زمانی بوده قبل از این که مکان و زمان ایجاد بشه حق تعالی بوده به اتفاق همه مسلمین الله و خالق و کل شای صریح قرانه همه چیز رو آفریده خب پس بنابراین این او در لا مکان او در لا زمانه یعنی اون مجرد اون مادی نیست که احتیاط به مکان و زمان داشته باشه قبل از ایجاد زمان و مکان و عرش و فرش او بوده بعدم که اینا رو ایجاد کرده محیط برای همه بوده نه محات اگه تو بگی تو عرش نچسته یعنی رو زمین نیست اگه آمده اینجا اونجا نیست اگه میگه همونجاست همونجا هم اونجا، مازالله مثل آدم سی کشف پیدا میکنه از اونجا میاد اینجا که سپات خلقیه اینا چیه که مجسمه شما ساختین برای خودتون از خدا این است که ناچار ما میگوییم که در این سیر من الحق الى الحق اولا ما با جنب سلب جرو میریم چون اگه با جنب سلب نریم همین سپات که در خلق جیدیم در اونم سراغ بکنیم اونم مخلوق میشه ما میگیم اگر ما متولد شدیم اولم یلج اگر از ما زایش میشه اولم یولد اگر ما مثل رو نظیر داریم او ل سکه می داریم. اگر ما محدودیم او محدود نیست از کنم که همه اشع رو خلق کرده اندازه دادیم. اون وقت اینجا یک سالال بزرگم واسه ما پیدا میشه. ما از شهر خیلی حرفای های اونا بیرون میایم، اینا رو حمله مجاز میکنیم اون وقت می گوییم که خب پس تو میتونی بگی که چون من عالمم اون عالم نیست. چون من قادرم او قادر نیست. بله دیگه قدرت رو اینجا دیدیم علم رو اینجا دیدیم به علم اون بزاده اون که پی نبردیم اینجا این مشکل چی میشه جوابش اینه که سپات دو دسته هستن یه دست سپات عینیت دارن یه دست سپات مقوله به تشکیک هستن مقوله به تشکیک مثال بزنم یه اصطلاح فلسفیه مثل نور که مراتب گوناگون داره یه چراغ هم نوره کرشید عالم افروزم نوره ما میگیم بله بعضی از سپاته که مراتب و درجات داره علم و قدرت از اون مقوله است از کنم که علم ما محدود علم او نامحدود علم ما تحصیلی یعنی نداشتیم پدیل آمده علم او ازلی و ذاتی علم او لایت غیر اشتباه درش نیست علم ما اشتباه علم ما قابل تکامل علم ما علم حصولیست علم او علم حضوری پس این در یک مرتبه ضعیفی ما علم داریم که نسبت به اون مرتبه اعلامی علمه و همطور قدرت آیا در قرآن هم چنین چیزی میتونیم پیدا کنیم که بگیم که بله در این سپات ما اشتراک نداریم با خدا مناسبت داریم مناسبت داریم بله خداوند من که در سوره فستلت که یه قومی رو که حداکشون کرده اینها یه اونا گفتن که من اشدوم ناقوتن این قوتن که اینجا منصوب شده تمییزه یعنی از حیث قدرت و قوت نیرو کی از ما بالاتره؟ اولم یعلمون انالله اللذی خلقه هم هو اشد من هم قوه آیا ندانستن اون کسی که اینها رو خلق کرده قوتش از اینا شدیدتر و قوید. پس این برای هر دو قوت اثبات کرد هم برای اونها قوت اثبات کرد هم اشد قوتن برای خدا به کار بود پس چون اگه ما بگیم که چون ما خلقیم او حقه پس اون قدرت نداره تو ما قدرت داریم پس او علم نداره ما علم داریم اولا اینجا به تعطیل میرسیم ثانیان این که کتاب خدا زیر سال میره که برای خدا علم اثبات کرده قدرت اثبات کرده منطقه علم و قدرت و این چیزهایی که خدا اثبات کرده با علم و قدرت ما زمین تا اسمون فرق داره یا این تمام زمین جمع بشن و هفت که دریا که به کسرت یه دریاها و بی نهایت مراکب بشن معلومات خدا رو بنسن ما نفلت کلمات الله پایان نیم پذیریم. یعنی علم بی نهایت و همطور راجع به قدرتش پس این اینجا در حقیقت ما به مماثلت قائل نشدیم یعنی مثل نیست علم ما که بگوییم ارز کنم که بله چون ما خلقیم اونم مثل ما علم داره بنابراین اونم مخلوقه نه مثل ما نیست بعضی از حکمه و فلاسفه آمدن اینجا میگویند که برای اینکه این مشکل بهتر حل بشه اینطوری مرتبهی ندید جلو که بگیم ما مرتبه ضعیف علمو داریم اون مرتبه علا نهایت و همطور قدرت و رحمت دیگر سپاش همیتر بلکه بگویید که خوز القایات و شکل مبادی نتیجه رو بگیر اون مبادی رو در مورد خدا ترک کن من الان علم دارم که این قرآن کریم جلوی منه خدام علم داره که این قرآن جلوی منه درسته؟ نتیجهش یکیه ولی اون که او علم داره اون علم اون یه جوری دیگه است به یه نحوه دیگه است به علم آهاتیه علم بینهایت خوز القایات قایت رو در نظر بگیر نهایت رو اون مبادی رو انکار بکن که اونچه که در من به نام علم هست در خدای تعالی هم همینطور هست اونچه که در من به صورت قدرت هست در خدای تعالی هم هم خوز القایات نتیجه رو مثلا قدرت خب من قدرت دارم که این دوربین رو یه مت عقب تر بهم. خدام قدرت تاریه یه فرمان دوربین دور، دور برای یه متر عقبتر اما از حیث نتیجه هر دو به یک نتیجه میرسه حالا البته قدرت خدا محدود به این نیست که یه متر مینامودش بکنه اصلا حال اما از حیث مبادی اون که در خدا هست که موجه به این حرکت شده اون با اون که در من هست به کلی تفاوت لعی سکمست لعی شای مار اینجاست نمولسه فتحه فل مولسه فتح ذاته لایسکه می‌است ریشه دارسه فتحه فل نیست در فتحه فل ممکنه شبهات باشه از همون اخلاق و دکم منعتین که هی اتیش مال ازد در قرآن در این جای یوته فتبار که الله احسن الخالقین خدا قبول کرد خالقین دیگری هم غیر از خودش هستن راسته ولی او احسن و خالقینه بهترین خالقه که در خالق غیر از خدا تمام از هایی که خونه ها رو می سادن یه نوع خلقیه دیگه خلق منشیه نه منلاشیه خلق از چیز خلق از یه ماده ایست پلابان اینو اسمشو خلق گذاشته <تصفح> تو سور پشت فرموده ادم ترکی پفرد عرب بکب آج ارم از آتل اماد شهر ارم که دارا و ستونها و زیادی بود الذي لم يخلق مثله في البلاد اون شهری که ارمی که ماننده او در شهرها خلق نشده بود یه خلق نشده بود و کی خلقش کرد بنده ها دیگه بنده اون شهرو ساخسه بودن اون سوسنهای عظیم زده بودن و مثلا ساکسمانهای عظیم درست کرده بودن بنابر این این خداوند اسمش خلق گذاشته پس خدا خالق ما هم خالقیم در مرتبه پایینتر اون خلقه از هیچ میکنه ما خلقه از چیز میکنیم اما این سفت ذات نیست سفت فعله در ذات هیچ کس با خدای تعالی شرکت نداره کمترین شرکتی نداره اون قول اول بحث شرکت نمیکنه مماثلت رو بحث نمیکنه مناسبت رو بحث میکنه میگه ما که میگیم علم داریم قدرت داریم این یه داره با علم و قدرت خداوند بالاخره به با اون هم نصفت علم میدهیم قدرت وانتا میگه اون بینهایت علمش او حادث نیست و او متغیر نیست او فلان نرفرم ولی بالاخره علمه نتیجه اینست که مثل ما میدونه که این از کنم که قرآن اینجاست اون ظرف اونجاست و اون فلانشه اینطوره اینها ولی این دست احتیاطشون قویتره. میگن خوز القایات وطرکل مبادی از مبادی حرف نزن ما در ذات خدا عبدا نمیتونیم بارد بشیم مگر به طور سلبی همطوری گفتم به طور ایجابی نمیتونیم بارد بشیم میگیم که او جسم نیست برنی که اجسام حادث هست او محدود نیست و که کل محدود مخلوق میگیم او متغیر نیست و که هر متغیر حادث الادما متغیر و, و کل متغیرن ان حادث و الادما حادث وله هم محجز این قضایه منطقی که خودتون متکلمین درست کردن و میگن تو کتاباشون به هر حال سخن اینجاست بله بعد اینجا چون بحث هست که در از خدا به خدا بحثه ما از صفات خدا دو چیز سراغ داریم یکی تجلیات اون صفات یکی اسماء اون صفات تجلیات اون سپات مثلا علم داره نظم آلمانه در این عالم بپاش شده که اثر علمموست او قدرت داره کوها و یعظیم آسمان خراش ها و یعظیم نمیدونم ها و پیدا شده این نمونه قدرت خداونده او رحمت داره رحمت در جل انسان ها نسبت به هم در حیوانات نسبت بچه هاشون پر زندانشون. اینا نمونه ها اینا تجلیات از کنم که اون صفات الهی در آلم خلق هستند از این راه از این جز به کل پی میبریم درسته این یه جور آشنایی با صفات یکم از راه اسماء خدا که شریعت آورده والد الله الاسماء الحسنا فذعو بها و زر پی يهدون اسماء به هر حال اینکه در قران کلیم آمده که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن من العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اخر سوره حشر ای اسماء خلاص که در قران زیاده که مشهورم هست که 99 اسم خدای داره یک اسمش سر الله و به علمه یعنی خدا فقط اون اسم رو خدا میدونه چون اون اسم اسم ذاته بقیه دیگه همه سپاته اسم سپات حتی الله هم اسم سپته یعنی معبود به حقه از اله مشتق شده یعنی حقا اوست معبوده که او رو باید عبادت کرد و این نمیگه که پرمونه ذات خدا چیه پس ذات خدای تعالی محرس کنم که خودش فقط میدونه که خودش چیست اینا لا و یعلم و کیفه و شما حی رو از کجا فهمیدی حی حیات من دیدی حیات خودش رو دیدی حیات قیوم هم یعنی قائم به ذات ذاتش چیه که قائم به خودشه ذاتش رو نمتایی بود پس ذات رو توضیح ندار میگه ذاتش از جایی مشتق نیست به خودش قابمه این که نمیگه زاد چیه چیستی خداوند معلوم نیست بر ما لا یعلم ها کیفه و الا هو نمیداند هو چگونه است مگر خودش بنابراین ما مفاهیم سلبی بیشتر تو زهنمونه مفاهیم ایجابی نیست نصفت به خدا بعد در وجود یه مفهوم از کم ایجابیست منطقه اونم به تشکیکه و مرتبه اعلای وجوده ما مرتبه مثل او خورشید با یه نور یه ارز کنم که شاع نور این حرف اینطوری و ارز کنم که فلاسفه قیل کردن با گفتن باجبال وجود یا حی قیم زاد خدا معلوم شد نه این مفهوم معناست مصداق این چیه چیه که باجبال وجوده پیانبر ما پرموده تفکر در اینها نکنید و من تفکر الله لا یزید و صاحب هو الا تهیرا هر کسی در ذات خدا تفکر کنه جز تهیری چیزی به دستش نمیاد تفکرو فی خلق الله در خلق خدا فکر بکنید آره پس اون بحث ما که سیر من الحق الالحق اولا سلبیه اثانیان این که در کتاب خدا اگر سپاتی برای خدا گفته اینا حمل مجازات میشه تو خود قرآن حتی نسبت به مخلوقات و مجازات به کار رفته چه ورسه نسبت به خالقی که لیسک هم مثل و راههایی که دیگران رفتن بریم یا مجسمه میشیم یا معطله میشیم یا میگیم الفاظ بی معنا در کتاب خدا آمده یا مجبوریم خداوند رو مثل خلق یه موجود مرکبی از هش و دست و پا و یه انسانی خلق آدم علاوه بر به شکل خودش آدم رو آفرید حالا معنی حدیثم اگه درست باشه چیز دیگه است معنی حدیث ظاهرا اینه که از حضرت رضا نقل شده که یه کسی به دیگری جلوی پیغمبر گفتش که قبح الله وجهک و, و وجه من شبه بک خدا صورت تو را قبیح کند و هر کسی که شبیه توه پیانبر فرمود که اینو نگو خلق آدم علا صورته آدم شکل این بودی خوده من در میراج دیدم خلق آدم علا صورته حضرت آدم شبیه این آقا بود تو این بهش نگو لعنت بر صورت تو و صورت شبیه به تو بعد این مقدمه را رها کردم فقط این حدیث رو در نظر گرفتن خلق آدمه علا صورته. خدا آدم رو به صورت خودش آپرید. نه بابا. حدیث منظور این که خدا این یارور شبیه آدم آپرید. وقتی که حدیث، حدیث هم شهن صدور داره. دیگه مثل قرآن که گاه شهن نزور داره، اونو میگن شهن صدور داره. یعنی یه بس قضیه پیش آمده، پیامبر مثلا به تناسی این در صورت نیست که حدیث درست باشه حالا اگه حدیث غلط باشه که اصلا دیگه بدش کن هیچی لیسه که مثل این مثل خدا هیچ چیزی نیست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته